توینده فرید حامد این داستان زحاک ماردوش سلام به دوستان عزیز یاران همراه و علاق مندان به قصه‌های های کوهن فارسی با دومین برنامه از سری برنامه های های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی توزی در خدمتتون هستم و در این برنامه بخش دوم از داستان زحاک مردوش رو با هم پی می‌گیریم. با ما باشید. فرمان روایی زهاک بر ایران. در همون دورانی که زهاک در سرزمین سواران با هیله و نیرنگ پدره بزرگوارش رو به قتل میرسونه و تخت سلطنت را غصب میکنه در کشور ایران که کشور بزرگ اون روزگار بود پادشاهی به نام جمشید زندگی میکرد زمان فرمانروایی جمشید طولانی شده بود و مردم که در رنج سختی روزگار میگذروندن تصمیم گرفتن تا به این زندگی بیهوده و سلطنت جمشید ستمگر پایان بدن البته لازم بدونید که یا شاید خیلیاتون میدونین جمشید از ابتدا پادشاهی بود بسیار عادل و خیرتمند و دارای فرح ایزدی اما بعد از اینکه به قدرت رسید و خدمات زیادی هم انجام داد دوچار قرور رو خودپسندی شد و خودش رو حتی برتر از خدا دونست از اون زمان بود که شروع کرد به تغییر یافتن و تبدیل شدن به یک پادشاه ستمگر تا کار به اونجا رسید که مردم از دست اون به سطوح اومدن و خودشون رو برای یک شورش عظیم آماده میکردند و شاید برخلاف این روزها سپاهیان جمشید هم در کنار مردم قرار گرفتند و همه با هم به این نتیجه رسیدند که باید جمشید رو برکنار کنند ظرف مدت کوتاهی یک سپاه بزرگ تشکیل شد و سرداران اون سپاه با هم به مشورت پرداختند و به این نتیجه رسیدند تا با سپاه زهاک متحد بشن و با اونها بر علیه جمشید قیام کنند شاید اونا نمی که زحاک حتی برای مردم خودش هم پادشاه خوب و دادگری نیست زحاک با این پیشنهاد موافقت کرد و به یاری سپاه ایران اومد و پس از پیروزی بر جمشید حکومت ایران رو هم به دست گرفت در وهلهٔ اول ایرانی ها خوشحال و شاد از اینکه جمشید ستمگر رو نابود کرده بودند حکومت زهاک را قبول کردند قافل از اینکه زحاک در قتل و ظلم و خونریزی و خونخاری نه تنها کمتر از جمشید نیست بلکه به مراتب از اون بدتره در مدت زمانی کوتاه مردم سرزمین ایران به افرادی افسرده و غمگین تبدیل شدند هر روز دو جوون از جوونای برومند ایران زمین به دستور زهاک به سوی مرگ می رفتند و حق اعتراض هم نداشتند و کار به جایی رسید که ذوق و هنر و علم و دانش از بین مردم ایران رخت بربست و کشتار و قارت اموال مردم بیگناه و افسونگری و جادو رواج پیدا کرد پدر و مادرای زیادی در قم از دست دادن جوانای خودشون خون گریه کردن و ظلم و ستم در سرزمین ایران بیداد میکرد در اون تاریکی و وحشت و ظلمی که در ایران زمین حاکم شده بود ناگهان دو جوون دلیر باهوش و خردمند برای پایان دادن به قتل و کشتار جوونهای ایران توسط زحاک تصمیم جدیدی گرفتند این دو جوون بنابر روایت شاهنامه فردوسی ارمایل و گرمایل نام داشتند ابتدا اونا شروع کردند هنر آشپزی رو یاد گرفتن و خودشون رو برای کار در آشپزخانه زحاک آماده کردند. و سپس به سوی دربار زحاک رفتن و به عنوان دو آشپز ماهر و چیره دست مشغول به کار شدن از اون روز به بعد ارمایل و یرمایل از هر دو جوونی که برای کشته شدن می آوردن، یکی رو آزاد میکردن و یکی رو به اجبار قربانی میکردند و از مغز سر اون با ترکیب با مغز سر گوسفند غذای مارهای دوش زحاک رو تهیه میکردند با این ترفند هر شب یک جوان از مرگ نجات پیدا میکرد و به سوی خونوادش برمیگشت البته به سوی خونواده که نمیتونست برگرده و طبق روایت شاهنامه اونها رو در جایی پنهان میکردند و وقتی تعدادشون به یک حد مشخص میرسید اونها رو با تعدادی بز و گوسفند راهی کوهستان میکردن که در خفا و پنهونی به زندگیشون ادامه بدن خب دوستان این بخش هم به پایان رسید داستان زحاک داستانی بسیار پردرد، رنج و در عین حال سرشار از پنده اندرس با ما باشید تا در شبهای بعد ادامه این داستان حماسی رو با هم پی بگیریم تا برنامه دیگر قصه دیگر از قصه های شاهنامه حکیم بزرگوار توس جناب فردوسی همه شما رو به خدای مهربان می سپارم روز و روزگارتون به کام و به میل